مقبرهای دیگر لحظه ی حال را میتوان به عنوان معبر اصلی تلقی کرد. لحظه ی حال ویژگی اساسی همه ی معبرها از جمله کالبد درونی است. تو نمی توانی در کالبد درونی خیش باشی و با تمام وجود در لحظه ی حال حاضر نباشی. زمان و جهان صورتها به طرزی غیر قابل تفکیک به هم مربوطند. همانطور که بی زمانی لحظه حال و باطن هستی به هم مربوط هستند. هنگامی که با بیداری در لحظه حال زمان را محو می کنی، نسبت به ذات غیر متجلی هستی، مستقیم و غیر مستقیم آگاه میشوی. به طور مستقیم آن را به مسابح پرتو و نیروی حضور آگاهانه خود احساس می کنی. بدون هیچ مضمون یا محتوایی. فقط حضور ناب، به طور غیر مستقیم ذات غیر متجلی یا باطن هستی را از طریق جهان حسی و در خلال پدیده ها احساس می کنی. به عبارت دیگر تو ذات الهی را در همه مخلوقات، همه گلها، سنگها و غیره احساس می کنی و با خود می گویی هر آنچه هست مقدس است. هر زرهی را که بشکافی در دل آن ذره خدا را میبینی. یکی دیگر از راه های وصول به باطن هستی و یا ذات غیر متجلی هستی فرونشاندن قبار تفکر است. این راه با گامی ساده آغاز میشود، با تنفسی آگاهانه و با نگریستن هوشیارانه به یک گل بیان آنکه تعبیرها و تفسیرهای ذهنی در میان باشند. برای ایجاد شکافی میان جریان بیوقفی ذهن راههایی متفاوت وجود دارد مراقبه تعمل درباره این راه هاست فکر ای از حقیقت متجلی یا ظاهر است فعالیت مداوم ذهن تو را در زندان صورت ها نگه می دارد و هجاب آگاهی تو از ذات غیر متجلی هستی که بیشکل و بی زمان است می شود فعالیت بیوقفه ذهن نمیگذارد ذات الوهی همه چیز و همه کس را ببینی البته وقتی که به شدت حضور داری لازم نیست به فکر ایجاد شکافی در جریان بیوقفه فکر باشی زیرا در این حالت ذهن خود به خود متوقف می شود به همین دلیل گفتم که لحظه حال ویژگی اساسی همه معبرها یا درهای گشوده به روی خداست تسلیم یعنی رها کردن مقاومت ذهنی و عاطفی در برابر آنچه هست نیز یکی از معبرهای گشوده به روی ذات غیر متجلی هستی است دلیل این موضوع بسیار ساده است مقاومت درونی رابطه ی تو را با خود با دیگران و با جهان پیرامون تو می گسلد. مقاومت درونی در تو احساس جدا بودن ایجاد می کند. احساسی که نفس را تغذیه می کند. هرچه احساس جدایی تو شدیدتر باشد، وابستگی تو به دنیای صورتهای جدا از هم بیشتر می شود. هرچه بیشتر وابسته دنیای صورتها باشی، در هجاب تری، معبر بسته می ماند و ارتباط تو با بعد درونیت قطع می شود. در حالت تسلیم شفافتر می و نور ذات غیر متجلی هستی را از خود ساته می کنی. گشودن معبری برای وسور به ذات غیر متجلی هستی به تو بستگی دارد. میدان انرژی کالبد درونی خود را لمس کن. شدیدن حضور داشته باش. حساب خود را از حساب ذهن خود جدا کن. تسلیم باش. اینها معبرهایی هستند که میتوانی از آنها عبور کنی اما عبور از یکی از این معبرها کفایت میکند به محض که به یکی از این معبرها گام میگذاری عشق به عنوان فهم وحدت عارفانه همه چیز و همه کس در تو میشکفد عشق معبر نیست عشق آبری است که از معبر عبور میکند و به دنیای ما میآید تا موقعی که در دام هویت سوری خیش هستی نمی نمیتوانی عاشق شوی وظیفه تو آن نیست که به دنبال عشق بگردی وظیفه تو آن است که معبری برای عبور عشق پیدا کنی سکوت آیا غیر از معبرهای یاد شده معبر دیگری وجود دارد؟ آری وجود دارد ذات غیر متجلی هستی از ذات متجلی هستی جدا نیست ذات غیر متجلی هستی چنان آشکار در پریده های عالم ظهور کرده است که تقریبا همه او را نمی بینند او از شدت ظهور مخفی می نماید. اگر بدانی چگونه و کجا دنبال او بگردی، او را در همه چیز و همه کس می‌یابی. بدین سان در هر لحظه و در هر پدیده‌ای دری به روی تو گشوده می‌شود. آیا می‌شنوی صدای سگی را که در دور دستها پارس می‌کند؟ آیا می‌شنوی صدای اتومبیلی را که از خیابان می‌گذرد؟ با دقت گوش بده. آیا می توانی حضور ذات غیر متجلی هستی را در آنها احساس کنی؟ نمی توانی. در سکوتی به دنبال او بگرد که مستر و مرجع همه صداهاست. توجه خود را به بستر سکوت همه صداها معطوف کن. نه به خود صداها. گوش سپردن به سکوت بیرونی سکوتی ژرف را در درون تو می آفریند. دری به روی تو گشوده می شود. هر صدایی در سکوت زاده می شود، در سکوت می میرد و در طول عمر خود، در دل سکوت می زید. سکوت است که به صدا امکان هستی می بخشد. سکوت، انصر ذاتی و غیر متجلی همه صداها، نتهای موسیقایی، آوازها، نغمه ها و کلمات است ذات غیر متجلی هستی، به مصابه سکوتی است که در جهان ماست در جهان ما هیچ چیز به خدا شبیه نیست جز سکوت تمام آنچه که باید انجام بدهی این است که به این سکوت گوش بسپاری حتی موقع حرف زدن با کسی به سکوت کوتاه بین کلمات و ها گوش بسپار با این کار بعد سکون در تو میشکفد زیرا نمی توانی بدون سکوت و سکون درون سکوت بیرونی را بشنبی سکوت بیرونی سکوت و آرامش درونی تو وارد حریم حرم ذات غیر متجلی هستی شده ای مبارک با جا یا فضای خالی همانطور که هیچ صدایی نمیتواند بدون سکوت ایجاد شود. هیچ چیز نمی تواند بدون هیچ چیز ایجاد شود یعنی بدون فضای خالی که به آن چیز امکان بودن می دهد. هیچ چیز به چیزها امکان بودن می دهد و خود چیز نیست به تعبیر این آیه قرآنی لیسه کمثلهی شی همه چیزها از این هیچ چیز صادر می شوند در این هیچ چیز زندگی می کنند و به این هیچ چیز باز می گردند. حتی در درون هر چیز نیست. این هیچ چیز بیشتر از هر چیزی هست. برای مثال نزدیک به صد درصد بدن تو را فضای خالی تشکیل می دهد. فاصله اتمهای بدن تو به نسبت اندازشان بسیار بسیار زیاد است. حتی در درون اتم ها نیز فضای خالی وجود دارد. در فضای داخل اتم ها به جای ماده ارتعاشات موجی هست، چیزی شبیه به نتهای موسیقی. بودا این نکته را 2500 سال پیش دانسته بود. او گفته است: صورتها توهی‌اند و تهیت صورت است. تهیت ذات همه اشیاست." ذات غیر متجلی نه تنها به عنوان سکوت در جهان ما حضور می‌یابد بلکه به عنوان فضای خالی مجال بودن اشیا نیز در جهان ما حاضر است فضای خالی در درون و بیرون این فضای خالی مانند سکوت مورد قفلت ما واقع می‌شود توجه آدم‌ها به اشیای درون فضاهای خالی معطوف می‌شود نه به خود فضاهای خالی صورت ها نمیگذارند ما فضای خالی پشت سرشان را ببینیم صورتها هجابند. به نظر می رسد که شما می خواهید بگویید که این فضای خالی یا هیچ چیز به نهوی رازورانه هستند نه اینکه نباشند آنها چه هستند؟ پرسش تو درست مطرح نشده است. ذهن تو میکوشد هیچ چیز را به چیزی تبدیل کند. به محض اینکه آن را به چیزی تبدیل می کنی از شناخت آن محروم می مانی. همین چیز است که هجاب شناخت تو می شود هیچ چیز یا فضای خالی ظهور ذات غیر متجلی هستی در جهان ماست جهان صورتها این تنها چیزی است که می توانیم آنچه گفتنی نیست بگوییم گفته من متناقض نماست تو نمی توانی آن را به موضوع شناخت خود تبدیل کنی. همه دریا را نمی توانی در کوزه ذهن خود بریزی. تو نمی توانی تز دکترای خود را درباره هیچ چیز بنویسی. وقتی دانشمندان درباره فضا صحبت می کنند، آن را به چیزی تبدیل می کنند. به همین دلیل از فهم ماهیت حقیقی فضا در میمانند. فرضیه اخیر این است که فضا اصلا خالی نیست و با چیزی پر شده است وقتی فرضیه ای داری پیدا کردن شواهدی برای اثبات آن فرضیه چندان دشوار نیست حداقل تا زمانی که فرضیه رقیب دیگری ارزندام نکرده است هیچ چیز فقط زمانی میتواند معبر تو برای تجربه ذات غیر متجلیه هستی باشد که نکوشی آن را بفهمی و یا تصویر کنیم آیا ما اکنون همین کار را نمی کنیم؟ نه اصلا من به تو سرنخهایی می دهم تا نشان دهم که چگونه می توانی بعد غیر متجلی هستی را وارد زندگی خود کنیم ما نمی کشیم این بعد را بفهمیم چیزی برای فهمیدن نیست این فضای خالی موجود نیست موجود بودن به معنای لفظی کلمه یعنی آشکار بودن. تو چیزهایی را میفهمی که آشکارند. نمی توانی فضای خالی را بفهمی. زیرا آشکار نیست. این فضای خالی گرچه موجود نیست. اما همه چیز را در خود آشکار می کند. سکوت نیز موجود نیست. اما به همه صداها امکان وجود می دهد. وجودهای ممکن. به همین شکل ذات غیر متجلی هستی به همه چیز و همه کس امکان تجلی و ظهور می دهد. بنابراین اگر توجه خود را از اشیای درون فضای خالی برگیری آن را به خود فضای خالی معطوف کنی چه اتفاقی می افتد؟ ماهیت این فضای خالی چیست؟ اسباب و اساسی عکس ها و غیره همه در داخل اتاقند. اما خود اتاق نیستند. سقف و دیوارها و کف اتاق مرزهای اتاق را نشان میدهند، اما خود اتاق نیستند بنابراین ماهیت خود اتاق چیست؟ ماهیت اتاق فضای خالی است بدون این فضای خالی اتاق وجود نمی داشت از آنجا که فضای خالی هی چیز است می توانیم بگوییم که این هی چیز. مهمتر از همه چیزهایی است که در آن قرار دارد بنابر این نسبت به این فضای خالی که درون و بیرون تو را فرا گرفته است آگاه و هوشیار باش درباره آن فکر نکن آن را احساس کن توجه خود را به این هیچ چیز معطوف کن با این عطف توجه بنیاد آگاهی تو دگرگون شود دلیلش این است هر چیزی در بیرون معادلی در ذهن تو دارد معادل چیزهای بیرونی چیزهای ذهنیاند افکار احساسات و آن چیزهایی که حواس ما احساس میکنند معادل فضای خالی بیرون که به اشیای بیرونی مجال ظهور و بروز میدهد فضای خالی درون است که به اشیای ذهنی مجال ظهور و بروز میدهد بنابراین اگر توجه خود را از اشیای بیرونی بگردانی، خود به خود توجه خیش را از اشیای ذهنی نیز گردنده ای. به تعبیری نمیتوانی به چیزی فکر کنی و هم نسبت به فضای خالی درون و بیرون آن چیز آگاه و هوشیار باشی. با آگاهی نسبت به فضای خالی درون و پیرامون خود، نسبت به فضای خالی بی ذهنی نیز آگاه میشوی. نسبت به آگاهی ناب ذات غیر متجلیه هستی بدین سان تأمل ژرف در فضای خالی معبری برای عبور تو می شود فضای خالی و سکوت دو جنبه یک حقیقتند، همان هیچ چیز آنها تجسم بیرونی فضای خالی و سکوت درونیند. سکونی که زهدان خلاق هستی است. بسیاری از آدم ها نسبت به این بعد هستی بیخبرند آنها از فضای خالی درون و سکون درونی بیبهرند آنها از حالت تعادل خارج شدند به تعبیر دیگر آنها دنیا را میشناسند یا گمان میکنند که میشناسند اما خدا را فراموش کردند آنها خود را با صورت فیزیکی و روانی خود یکی پنداشتند و ذات خود را به دست فراموشی سپردند. از آنجا که صورت ها ناپای دارند، این گونه آدم ها مدام در ترس زندگی می کنند. این ترس موجب فهم غلط آنها از خود و دیگران می شود. اگر قیامتی برپا می شد و زمین بلرزه در می آمد، قباری بر دامن ذات غیر متجلی هستی نمی نشست. آنچه واقعی است هرگز تهدید نمی شود آنچه غیر واقعی است وجود ندارد فهم این نکته موهبت آرامش الهی است اگر ارتباط آگاهانی خود را با ذات غیر متجلی هستی حفظ کنی آنگاه برای همه چیز و همه کس احترام قائل خواهی شد زیرا همه چیز و همه کس را مظاهر آن حی لایموت میبینی که برای همه صورتها و مظاهر است و نیز خواهی دانست که همه چیز و همه کس یعنی همه صورتها باز به همان ذات یگانه باز میگردند و در او محو میشوند به دین سان بر دنیای صورتها چیره میشوی زیرا از دنیای صورتها فراتر رفتی تو به ساحل دیگر زندگی RECIDEY